ولم السيف ولم جبين إصغاء لم بسم الله الرحمن الرحيم تمام حمد والصنا وستايش بخداوند يكتو وبهمتو درود وصلوات فراوان بر رسول الله صلى الله عليه وسلم برادران مهاجر و مجاهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به 24 مین برنامه هفته زبانی دری خوش آمدید خداوند زلجلال راس و پاس را سپاس گذاریم که به ما را مهیان نمود تا یک بار دیگر از طریق امواج صدای جند الله به خدمت دوستان عزیز قرار بگیریم بله همکار عزیز، امروز جمعه تاریخ نوی شعبان مطابق 29 جون. رادیوی صدای جندالله نشرات فارسی خود را در برنامه از جمعه تا جمعه ادامه می دهد. خدا کند که همیشه تحت رحمت الهی قرار داشته باشید. همکار عزیز در شروعی برنامه اخبار هفته گذشته را می شنویم که در جمعه گذشته نظر به مشکلات تکنیکی نتوانیسیم خدمتشون وندگان عزیز تقدیم نماییم. درست است. زبتر. افغانستان روز جمعه 25 رجب مطابقه 15 جون دو عسکری ناتو در نتیجه عملیات مجاهدین در شرق و جنوب افغانستان کشته شدند. نظر به گفته حکومت مرتد افغانستان در همین روز سی و از مجاهدین باشون مولی دوتن از قماندانانشان در شرینه مرکزی ولایت پکتیکا به شهادت رسیده است 27 رجب مطابقی هفته ایجون در نتجه عملیات کمینی مجاهدین در ولایت فرا پانزه اسکر نیروهای ناتو کشته و ده دیگر جراحت برداشتن گفته می شود که شروع این عملیات با انفجار یک ماین شده تلفاتی رسیده در این عملیات به دشمنان اسلام از بین دفتن 5 تانگ و چار موتر جیپ می باشد روز دوشنبه 28 رجب مطابقی هشته ایجون بر اساس گزارش‌های نشر شده از سوی حکومت مرتد افغان در نتیجه انفجار یک مانیک کناری جاده در ولایت هلمند 16 فرد ملکی کشته و زخمی گردیدند فرید احمد فرهنگ سخنگوی والی هلمند به های کفر گفت که در این رویداد 8 تن کشته و 5 تن دیگر زخم برداشتند روز سه‌شنبه 29 رجب مطابق 19 ژوئن در ولایت کنر عملیات شبانه نیروهای ناتو بالای مجاهدین سبب بهوقوع پای وسن جنگی بزرگی میان مجاهدین و شد که در این جنگ هشت عسكري آمریکایی کشته شدند در همین حال در اسنای جنگ یک مجاهد با سوی تایرهای بدون سرنشین فایر نموده و ایروس سقوط داد با تاریخ مذکور شش برادری استشهادی با استفاده از سلاح های سقیله و خفیفه در یکی از مراکز های ناتود در ولایت قندهار هجوم بردن. این جنگ تقریبا شش ساعت دوام نموده، سه جنرال اردوی ملی که اسم یکی از اشان عبدالقدوس بود کشته و شش تن دیگر جراحت شدید برداشتند. با تاریخ مذکور، نظر به های حکومت حملات مجاهدید و انفجاره در مناطق جنوبی افغانستان افضایش یافته است، مقامات میویند که مجاهدین یک قرارگاه ناتو را در جنوب افغانستان هدف قرار داد و یک مجاهد که لباس خواهی نظامی افغان را بتن تن کرده بود یک اسکر آمریکایی را هلاک کرد اکثریت واقعیت‌ها روز گذشته در ولایت کندهار گزارش شده است افرادی که پلیس افغان را پوشیده بودند روزی دوشنبه بر اسکر آمریکایی گلوله‌باری کردند که یک تن را کشته و هشت تن آنها ساختند به تاریخ مذکور حامد گرزی چهار روز وی علوم افغانستان را به خاطر توهین به قوم هزارت در اطلس نجات شناسی از وظیفه سبک دوش کرده است. روز چهارشنبه سی رجب مطابق 20 جون، وزارت دفاع افغانستان از آغاز یک عملیات جدید زیر نام نوید به همکاری ارگانهای امنیتی کشور خبر داد. مرتضى جنرال ظاهری عظیم سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در یک نشست در کابل گفت که این عملیات در تمام کشور مورد اجرا قرار خواهد گرفت. مرتضى در مورد میگوید امنیات اس افروز داتار سره عملیاتی به تمام قلوبای و, سر با و, و مربوطه ارسال و ایمنی کاش برای با گفته مقامات وزارت دفاع عملیاتی نوید برای مدت 18 مو پلان گذاری شده که با گفته ایشان یکی از عملیات مهم در افغانستان می باشد با تاریخ مذکور نظر به گفته های حکومت در نتیجه حمله هوایی نیروهای ناتو در ولایت کنر 21 تن از مجاهد به بشهادات رسیدن سخنگوی والی کنر در یکی از رسانه های گفت این حملات در ولسوالی و و مایگال پس از این صورت گرفت که مجاهدین بالای نیروهای ائتلاف حمله کردن با تاریخ مذکور مقامات ولایت پروان میگویند که در اثر حسابات یک راکت بر یک منزلی مسکونی در والوس ولی سیوگردین ولایت دو تن کشته و یک تن دیگر زخم برداشته است عبدالبصیر سالنگی والی پروان در یکی از رسانه های کفر گفت که این راکت بعد زوری روز چهارشنبه از سوی مجاهدین پرتاب شده است اما تاکنون مجاهدین در مورد تفسیری نکرده اند با تاریخ مذکور یک حمله استشادی در ولایت خوس دها کشته و زخمی بر جا گذاشت فرماندهان امنیتی ولایت خوس در یکی از رسانه‌های کفر گفت حمله کننده حین عبور کاروان نیروهای افغان و بین بین‌المللی خود را در منطقه اسپین جماعت ولایت خوس منفجر ساخت یک منبع امنیتی که نخواست نامش گرفته شود به رسانه‌های کفر گفت در این عملیات دو پلیس کشته و بیش از 10 تن دیگر زخم برداشتند همچنین مسئولین شفاخانه ها در ولایت خوس گفتند تا حال 18 کشته و سی 36 زخمی به شفاخانه ها آورده شدهاند. روزی پنجشنبه اول شعبان مطابق که جون، جمهور افغانستان در یک اقدام سابقه نشستی را به اشتراک قواهای سیگونه کشور روزی پنجشنبه در ساختمان شورای ملی کشور برای انداخته و به سخندرانی پرداخت در این نشست کرده بعد از آورته و ناکامیهای ده سال حکومتش اشاره کرد و گفت که تلاش میکند که در مدت دو سال آینده حکومتش کارهای موثر را انجام بدهد و گفت که انوس هم در بسیاری از مناطق کشور قماندون سولاری زورگویی و فسادیداری وجود دارد خربے میگوید تیم گرائی با تاریخ مذکور در اثر سرروزیر شدن سیلاب ها در ولایت فاریاب 12 تن کشته و چهار و تن دیگر لا درک شده ترکیه 29 رجب مطابق 19 دی بر اساس گزارش‌ها از ترکیه حداقل 7 سرباز ترکی در اثر حمله ناگهانی ملیشاهای کرد در قرارگاهشان کشته و پانزده تن دیگر در این رویداد زخم برداشتند. این حادثه در ویرایت اکوردی در نزدیکی سرحد ترکیه با ایران و عراق رخ داده است. گزارش شده است که اردی ترکیه عملیات جوابی را آغاز کرده که حملات زمینی و هوایی برزیدی ملیشه های کرد را در بر ضدی ملیشهای کرده در بردارد. حزب کارگرانی کردستان از 60 سال بعد سو برای خود مختاری بیشتری کرده‌ها در جنوب شرقی ترکیه می‌جنگند که در این خشنه‌ها تا حال حدود 4500 تن کشته شده‌اند. پاکستان روز شنبه 26 رجب مطابقی شانزدهی جون. در نتیجه یک انفجار در شمال غربی پاکستان 13 تن کشته و 20 تن دیگر در این انفجار که در منطقه رخ رخداد زخم برداشتند. اما دکتر عظام وزیری موظف در یک شفاخانه در خیبر جنسی در یک تماسی تلفونی در رسانه های کفری در مورد تلفات این افراد گفته است که در این رویداد تقریبا 15 نفر کشته و بیش از 80 تنی دیگر زخم برداشتند. بستون ایرج مطابق 19 جون محکمه عالی پاکستان ایران کرد. که یوسف رضا گیلانی صدر اعظم کشور سلب صلاحیت شود. اقدامی کی شاید ان کشور را به دور جدیدی کشمکش سیاسی بکشاند محکمے پاکستان این تصمیم را روز شنبه بر فیصله قوی اعلان کرد که گیلانی به عدم اطاعت از حکم محکمے در بازگوشهای دوسی فسادداری بر ضد زرداری محکوم شده بود افتخار محمد چوہدری قاضی القضاۃ پاکستان فیصله کرد که گیلانی بعد از محکوم شدن با تاریخ 26 اپریل برای ادام کارش در پست صدارت جے ڈی شروط نہ بود 30 رجب مطابق 20 جون زرداری رئیس جمهور پاکستان از پارلمان آن کشور خواست است تا روز جمعه صدر اعظم جدید را کندیر کند این اعلام پس از رد صلاحیت شدن گلانی از پست صدادارت از سوی استورا محکمے پاکستان صورت میگیرد این موضوع به دنبال بحث ها در حزب مردم یا پیپلس پارٹی ح... حزب حاکمی پاکستان صورت گرفت که بیشتر پارلمان عضویت آن را دارد هنوز معلوم نیست که چه کسی به حیث صدر اعظمی پاکستان تعیین خواهد شد هند بیستانوی رجب متابقی 19 جون در این حداقل اقل 32 روز شنبه زمانی کشته شدند که سرویزی حامرشان از بالا یک پل در غرب این کشور پایین افتاد و بیستانی دیگر در این یداز زخم برداشتند. فرانسا سی رجب متابقی 20 جون یک فرد مسلح چندین فرد فرانسوی را در شهر طولوس واقع در جنوب شرقی فرانسه گیروگان گرفته است. با اساس گزارش‌های تلویزیونی فرانسه این مرد ادعا می‌کند که وابسته به شبکه القاعده است و گفته است که خواستار صحبت با پلیس باشد. بلژیک 24 رجب مطابق 14 جون سه برادر فرانسوی به خاطر حمایت از زنان با وارد کشور بلژیک شده در آنجا دو پلیس را توسط چاقو زخمی ساخت. آلمان 24 رجب مطابق 14 ژوئن مسلمانان در کشور آلمان 25 میلیون جیل قرآن کریم را چاپ نموده در میان کفار توزیع نمودن در همین حال حکومت آلمان با قهر آمده مطبعه مذکور را قفل نمود و صاحب آن را از وظیفه برکنار ساخت سعودی 27 رجب مطابق 17 جون حکومت سعودی در اواخر نزدیک تقریبا 800 تانک را از کشور آلمان خریداری نمود گفته می شود که قیمت مجموعی این تانک ها به 10 میلیارد دلار میرسد. رسد نایجیریا. 28 رجب مطابق 18 جون سه برادر استشهادی طی حملاتشان سه کلیسای نصارا را موردی هدف قرار دادند. نظر به گفته های کفار در این عملیات سیزده تن کشته شدند. بعد از وقوع این حملات جنگ میانی مسلمین و نصارا در داخل شهر با وقوع پیوست که در نتیجه 150 تن مجروح شدند. آذربایجان 29 رجب مطابق 19 июن وزارت خارجه آذربایجان سفیر ترکمنستان در باکو رای هزار را هزار نموده است تا را به دلیل آنچ باکو فعالیت‌های غیر قانونی را در یک منطقه غنی از نفت در بحر خزر میخواند خواند دهد ده آذربایجان و ترکمنستان هر دو دوای مالکیت این منطقه را دارند آمریکا 29 رجب مطابق 19 جون یک تحقیق کننده ملل متحد از امریکا خواسته است تا در مورد پالیسی استفاده از طیاره های بدون پیلوت بر ضد مجاهدین و جای تذکری آنها توضیحات دهد. 28 رجب مطابقه 18 جون افراد ناشناسی نزدیک سرحدات اسرائیل و مصر رسیده یک اسکر یهودی را به قدر رساندند. بعد از وقوع این حادثه نیروهای حکومتی برای ایشان تیراندازی نموده را از فودر آوردند. 29 رجب مطابقه 19 جون، سخنگوی ستاد انتخاباتی مصر میگوید که احمد شفیق برنده انتخابات ریاست جمهوری مصر شده است و خبری برنده شدن محمد مرسی کاندید حزب اخوان المسلمین نادرست میباشد. احمد صحران در یک نشست خبری گفت که احمد شفیق 51.5 درصد آرای انتخابات را به دست آورده است. سیراج مطابق 20 جون در مورد وضعیت سیراج جمله سابق مصر حسین مبارک خبرهای زدنقی زبان عشر رسیده است. خبرگزاری رسمی مصر مینا در گزارش آورده خود گفته بود مبارک بعد از آن که از زندان با یک شفاخوانه نظامی در قاهره انتقال داده شد، از نگاه سیاهی مرده به حساب می آمد. اما در گزارشی رسانهای غربی از کل مقامات نظامی مصر آمده است که گفتهان مبارک 84 سال با تنفسی مسن وی زندانی داشته شده است. و بالاخره چند خبر جدید از افغانستان و منطقه. در نتیجه عملیات برادران مجاهد ما در ولایت کندوز یک ملیشه های محلی با محافظش کشته و یک تنی ایشان زخم برداشت. در نتیجه عملیات استشهادی خواهرین و ام عثمان در شهر کویتک یکی از مراکز فوج مرتدی پاکستانی را مورد هدف قرار داد، 13 فوج حکومت پاکستان کشته و 52 تن دیگرشان جراحت برداشتند. از الله متعال استدعا داریم که وی را در زمره‌ی شهدای واقعی قرار دهد. 21 عسکری پلیس ملی در ولسوارهای بولداغ و ارغستان ولایت کندهار با اسلحهشان به با مجاهدین پیوستند در نتیجه حملات مجاهدین در ولایت میدان وردک تقریبا 25 تن از نیروهای افغان کشته و 17 تن دیگر جراحت برداشتند افتمه شود که در این عملیات هشده موتر نیز به آتش کشیده شده است یکی از هیلوکوپترهای نیراهای آمریکایی در ولایت خوست از سوی مجاهدین توسطی راکت ارپیجی سخود داده شد که در نتیجه هیلوکوپتر ایم با تمامی سرنشینش به حلاکت رسید در ویلایت ننگرهار یک طفل با استفاده از یک داست یک سربازی آمریکایی را به قتل رساند می شود که این طفل پیسر یک رئیس حکومتی بوده که بعد از واقعه فرار نموده است. باز هم خوش آمدید. شنوندگانی عزیز موضوعاتی که در برنامه امروزی ما گنجایی یافته قرار زیل است. سلسله درس ها مرواری دی هفته موضوع انتخابی ما برای منافقین بگوید و همین طور تحولات یک هفته با ما باشید سلسله اندرزها هرکی دست از جام بشوید هرچی در دا دل, دل دارد بگوید هر که در حال توانایی نکوی نکند در وقت ناتوانی سختی بیند هر که بر زیر دستان نبخشاید به جور زبردستان گرفتار آید دنیا زود میگذرد، شایسته علاقمندی نیست تمجید کردن از خود بفایده است مشک آن است که خود ببویید نه آن که عطار گوید قدر عافیت کسی داند که به مصیبت گرفتار آید فریبی دشمن مخور و غرور مدده مخر که این دامی زرق نهاده و آن دامن تمی گشاده. عالم عمل درخت است و زاهید علم خانه بیدر. چون نداری طاقت نیش مکن انگوش در سوراخ گشدم. بر رعیت ضعیف رحم کن تا از دشمن قوی زحمت نبینی. شنا عزیز عزيز ان بوت عن درس به خدمت شما تقدیم گردید خدا کنه که مورد پسند شما قرار گرفته باشد الله هذا الذي مواردی هفته دومل فنلی واللخلوفی نهایت عزیز در بخشی مواردی هفته شما را خوش آمدید میگویم به همه ما و شما معلوم است که در این بخش موضوعات جالی بی را به خنش میگیریم. چنانچه در شروع برنامه گفتم، در این هفته موضوع جالبی را زیر عنوان برای منافقین بگوید انتخاب نموده که اینک من خانوش میگیرم. برای منافقین بگوید. بزودی منافقین و آنانی که در بیماری است برای شما خواهند گفت. آیا فکر میکنید که مراد و مقصود شما تحقق خواهد یافت؟ و آیا فکر میکنید که خلافت اسلامی و یا حتی دولت اسلامی برپا خواهد شد؟ نخیر، هرگز امکان پذیر نخواهد بود بلکه آن بیشتر از حقیقت نزدیک به خیال می باشد و آیا فکر می کنید که آمریکا، روسیه، اروپا و اسرائیل به آن اجازه خواهند داد در حالی که آنها سرسخت ترین دشمنان دین مقدس اسلام می باشند و به برای شما خواهند گفت شما بس سوی یک سراب در حرکت هستید و شما فریفت شدگانید که دین شما را فریفته است. از زمانی که به همچه سخنها دو و مواجه شدید، سخن خداون جل جلاله را بایاد آرید که فرماید اذ یقول المنافقون والذین في قلوبهم مرض غر اولائی دینهم و من يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. انگاه که منافقان و کسانی که در دلهاشان بماری بود می گفتن اینان مؤمنان را دینشان فرفته است و هر کس بر خدا جل جلالهو توکل کند بیداند که در حقیقت خدا شکست ناپذیری حکیم است برای آنها بگویید که خلافت اسلامی با وجود همه مشکلات و دشواری ها بدون شک بازودی عودت خواهد نمود و نیز برای آنها بگوید که دولت اسلامی اگرچه پس از مدتی هم باشد برپا خواهد شد زیرا نصرت الهی در آینده نزدیک به سراغ مسلمانان خواهد آمد و برای آنها بگوید بلکه بزودی خداوند جل جلاله روم را به مسلمانان فتح خواهد نمود چنانچه قبلا قسطنطنیه فتح گردیده بود و برای آنها بگویید که ما آرزوی نصرت الهی را دورتر از این داریم و امیدواریم که خداوند جل جلاله کریم لن و قصر سفید را برای ما فتح نماید زیرا با ما وعده الهی است که الله تعالی می فرماید وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات La jastakhli fannahum fil-aulikamastakhla falladina minkoblihim. Wala ju makkinanda la humdinahum ulla dirta wala humala juba dirannahum min baadehaufihim emne. Jaa buduna nilla juusi kuna bii xeja. Kodavangalla jouluruhuba kasoni as ki emon avarda wakorhoi joista karda an, wada dota ast. Kahatman onon rodda lin sarza min, joon xinehut karordihat. Hamanguna ki kasoni rakipiisha as-summa budan, joon xinehut و آن دینی را که برایشان پسندیده است بسودشان مستقر کند و بیمشان را به امینی مبدل گرداند تا مرا عبادت کنند و چیزی را با من شریک نگردانند لیکن آن زمانه تحقق خواهد یافت این به ما مهم نبوده و خداوند جل جلاله نیز ما را به آن مکلف نگردانیده است بلکه یگانه مکلفیت ما عمل کردن به دین دفاع از شریعت و به کار بردن تلاش و کوشش نهایی در راستای تطبیق آن می باشد. اما هرچی نتائج و ثمرات پس آن موکول و مفوض به خداوند جل جلاله هست. برای آنها بگویید چنانچه یعقوب علیه السلام پس از ناپدید شدن دو پسرش یوسف و بینیامین برای فرزندانش گفت. اینی لا و ریح یوسف لو لعن اگر ما را به کمخیردی نسبت ندهید بو یوسف را میشنوم. و برای آنها بگویید اگر ما را به کمخیردی نسبت ندهید با وجود این همه سختی ها و دشواری ها، بوی فرحت، نصرت، تمکین و عودت خلافت اسلامی به مشامی ما میرسد. پس وقتی که اینچین گفتید، بدون شک بزودی بیشتر از مردم برای شما خواهند گفت. شما سخت در گمراهی دیرین خود هستید. چنانچه منافقین پس از غزوه احود برای صحابه کرام رضوان الله عليهم اجمعین گفتند ارجعوا الى دین اعبایکم. بسوی آین آبا و اجداد خود برگردید و هنگامی که اهل ایمان به مصیبت دچار شوند یا وارد زندان گردیدند با وارد تعذيب و ستم قرار گیرند یا کشته شوند و یا هم جراحت بردارند انجاست که منافقین آنها را مخاطب قرار داده و این کلمات را به زبان می آورند دینتان را رها کرده از آن بگردید زیرا همین دین است که همه مصیبت ها را برای شما به بار آورده است و همین دین است که آینده شما را تباه نموده سرانجام شما را به تاریکی های زندان انداخته و در شهرها پر کرده است. پس دینی که مایه فراهم آوری همچون مصیبت هست، آن را باید رها کنید. تا طبیعتاً در سلامتی و آرامی زندگی نمایید. پس زمانی که این چنین کلمات را از زبان پلید و مردار آنها شنیدید، برایشان بگویید. این الله یوذا فی عانی اللّذین آمَنوا قطعاً خداوند از کسانی که ایمان آورده اند دفاع می کند و برای آنها بگوید. ولا ينصرن الله من ينصره وقد عن خدا بكسي الدين دين اورایاری میکند یاری می دهد و برای آنها بگویید لنا الا نتوکل على الله وقد هدانا سبولنا و چرا وحال أنك ما را قد على الله كذبا إن عدنا في بعد إذ الله منها Vamella kunurane an roode fihe illa ijeshe Allah hurabune. Vasia arabune kulla shei ina ilma, Allah hitaa wakkelne, wabbene ftahbeinane wabbene koumine bilhakki wan tachajruul fetihin. Agarbada zanki kudoa moro azon na jot baxida, boz bakieši sumobar gardim, dar hakie katba kudoa druvesta em, wamoro saza warniski ba on boz gardim, anki kudoa par war digori ma bihohat. که گاری ما از نظر دانش بر هر چیزی احاطه دارد بر خدا توکل کرده ایم بار پروردگار گارا. میان ما و قوم ما به حق داوری کن که تو بهترین داورانی. و به‌زودی منافقین و آنانی که در دل‌هایشان بیماریست است عین مقاله ای را که به اهل رجار گفتند یعنی یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم که از سوی مشکین غدران همه به قتل رسانده شدن برای شما نیز خواهند گفت افسوس به حال این فریب تشدگان. که با این چنین وضعیته به هلاکت رسیدند نه در خانه خود نشستند و نه رسالت پیامبرشان را ادا نمودند و هنگامی که برخی از برادرها به شهادت برسند یا به زندان انداخته شوند و یا مورد اثارت قرار گیرند بزودی این کلمات توسط افرادی که دارای بیماری قلبی هستند گفته خواهد شد نه در خانه هایشان به صحت و سلامتی نشستند و نه که منکرات و فواحش را از کنند و بزودی خواهند گفت نا آرام نشستن که فکر آینده و منافی خود را کنند و نتوانستند که دولت اسلامی را برپا نماین پس وقتی که همچو سخن‌ها را شنیدید بیاد آرد که قرآن مجید عبارات همچو شخصی را بیان نموده است چنانچه می‌فرماید مؤمن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام و از میانی مردم کسی است که در زندگی این دنیا سخنش تو را با تعجب و دارد. و خدا را برای آن در دل دارد گواه میگیرد و حال آنکه او سختترین دشمنان است ان صفت مخصوص و ویژه‌ی شخص مذکور در این آیه نمی باشد بلکه هر فردی که از او اتباع و پیروی کند و یا هر کی در هر زمان و مکان سخن او را به زبان آورد تحت این آیه داخل خواهد بود اما زمانی که شما به این چنین سخن ها مواجه شدید برای آنها بگویید آماج و هدف اساسی ما اقامه دین می باشد، و اما اقامه دولت اسلامی وسائل أز از وسایل دین است و امکان ندارد که ما غایرا فدا و قربانی وسیله نماییم و الله عنها به الله صلی الله عليه وسلم Masrufi بود برای آنها بگویید ابشیر فوالله لا يخزيك الله أبدا. و افرادی که با صدق و اخلاص Medihit. و از شریعت دفاع می نمایید و از کارهای خوب حمایت نموده با کارهای زشت مبارزه می کنید و مردم را با بصیرت کامل بسوی خدا دعوت می نمایید و امر به معروف و نهی از منکر نموده شبهه ها را با نماز و روزها را با روزه سپری می کنید و هنگامی که این طور سخن ها را شنیدید پس آبا و اجداد این منافقین را به یاد که خداوند جل جلاله در شأن آنها می فرماید قالوا لا لو ما قتلوا قل فذرؤ عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين هم ان کسانی کی خود در خانه نشستهند و درباره دوستان خود گفتند اگر از ما پیروی میکردند کشته بگو اگر راست میگویید مرگ را از خودتان دور کنید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم هرگز بلکه زنده اند که نزد پروردگارشان روزی داده میشوند و برای آنها بگویید هنگامی که مشریکین بلال رضی الله عنه را تعذیب می نمودن او در پایداری بزرگتر از پایداری کوها کلمه احد احد را زمزمه می نمود که در این وقت پیرمرد بزرگ ورقه ابن نوفل بر او گذر فرموده به مشریکین گفت ای مشریکین من به خدا سوگند یاد میکنم که او احد احد است پس اگر در این حالت او را بکشید او را به دوستی خواهم گرفت پس بیاید، درست توجه کنیم و بیاندیشیم که چی فهم عمیق و جرفای این پیرمرد بزرگ نسبت به دین مقدس اسلام دارد در حالی که او جز آیات محدود و احادیث چند از رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش از مرگش فرا نگرفته است. ولیکن یکانه چیزی که فرا گرفته بود خلوص قلب از نفاق و پاک داشتن آن از هوا و خواهشای نفسانی بود اکنون نوبت به بخش اخیری برنامه امروزی رسید البته در این بخش از تحولات یک هفته شما را با خبر می روزی روز جمعه دوی شعبان مطابق 22 جون تن از برادران استشهاده شب جمعه در یکی از هتل‌ها ها در منطقه قرغدس به عملیات زدن این عملیات تقریباً 12 ساعت دوام نموده در آن نظر به گفته‌های مرتضین 16 تن به یک پلیس کشته شدند رسانه‌های کوفری میگویند دو دکتر روز جمعه از یک انفجاری مین در ولایت کندهار جان به سلامت بردن کمیته بین‌المللی صلیب بی سرخ اعلام کرد انفجار زمان رخ داد که این دو دکتر به سوی یک مرکزی صحی روان بودند گفته می‌شود که این دو دکتر اندک زخم برداشته ولیکن سخت تکان خورده است اعتراف سر اقتدار پاکستان راجا پرویز اشرف را به کرسی صدرات این کشور تعیین کرده است اشرف بعد از آن برای احراز کرسی صدرات پاکستان نامزد می شود که نامزدی مخدوم شهاب در این صب با مشکل روبرو شد محکمه در پاکستان گفت که مخدوم زمانی که وزیر صحت بود ادویه‌ای را به صورت غیر قانونی به پاکستان وارد کرده بود که در تورید مواد مخدر به کار می رفت سازمان ملل متحد میگوید تعدادی کسانی که با کمک های بشر دوستان در سوریه نیاز دارند، در حال حاضر بیکنی میلیون نفر رسیدن. دفتری هماهنگی امور بشری انسان زمان همچینان روز جمعه گفت که ادارههای کمک رسانی در رسیدگی با غیر نظامیانی سوری که به خدمات اساسی نیاز دارند، با مشکل قابل ملاحظه روبرو هستند که دلیل آن خرابی وضعیت امنیتی در سوریه خونده شده است. در اعلامیه آمده که 350 هزار نفر در ایالات عدلیب حدود 250 هزار نفر دیگر در شهری خامس با کمک‌های دوستانه ضرورت دارند در این اعلامیه از قول مقامات سازمان ملل متحد گفته شده است که بیش از 96 هزار مهاجری سوری در کشورهای عراق، اردن، لبنان و ترکیه سبت نام کردند. از 31 ماهی مای بدین سو این رقم حدودی 20 هزار افزایش را نشان می دهد. مقام های محلی ولایت لوگر از کشته شدن قمنداران امنیتی ولوسوالی براکی براکی ولایت خبر دادند دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر گفت که شخصی مذکور از جمعه همرا با یک محافظش در حمله مجاهدین در بازار برک راهجان کشته شد و یک محافظ دیگری او شدیداً زخمی گردید و این نیز اضافه نموده گفته است که در فیر متقابل دو تن از مجاهدین نیز به شهادت رسیده اند. در نتیجه یک انفجار در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار چهار پلیس کشته و هشت تن به شمول یک پلیس زخمی گردیدند نیاز محمد قومندان امنیه ولسوالی ارغندا بر های کفری گفت که مواد انفجاری بر یک مترسایکل جاسازی شده بود. ترکیه تأیید کرده است که تیاره جیت قوای هوای این کشور اوائل روز جمعه در آبهای شرق مدیترانه ناپدید شده است. سوریا می‌گوید که این تیاره را سقوط داده است. روز شنبه سه شعبال مطابقه 23 جون رئیس جمهوری ترکیه عبدالله الله می میگوید که امکان ندارد کشورش این حقیقت را نادیده بگیرد که سوریه یک تیاره جیتی ترکیه را سقود داده است عبدالله گل پس از آن این سخن را میگوید که سوریه تأیید کرد که یک تیاره را روز جمعه سقود داده رسانه های کفریا از ترکیه به نقل از عبدالله گل گزارش داده گفته است در مورد این حادثه ترکیه هر اقدام را که نیاز باشد انجام خواهد داد رسانه‌ها می‌رسانند که عبد الله گول گفته است تحقیقات جرایان دارد تصدیق شود که واقعا این تییارات در قلمروی فضایی ترکیه هدف قرار گرفته است یا خیر اما اوایل روز شنبه حکومت سوریه تایید کرد که یک جیت جنگی را بازار به گلوله سقود داده است دفتری صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان نیز پس از یک نشست استقراری با اعضای کابینه و نظامیان این کشور اعلامیه‌ای را نشر کرد در این اعلامیه از قول اردوغان آمده است که گفته از ترکیه پس از دریافت تمامی حقایق در این باره اقدام خواهد کرد با اساس گزارش‌ها روز شنبه شماری از شاگردان لییسه نسوانی Imam یحیی در ایتالیا و اسپانیا موافقه کردند که در نشست سران اتحادیه اروپا، پیشنهاد رشد اقتصادی به ارزش 163 میلیون دلار را مطرح کنند. ماریام مونتی، صدر اعظم ایتالیا گفت: در اجلاس چهارجانبه در روم رهبرانی این چهار کشور پذیرفتند، غمهاهایی که تاکنون برداشته شده اند، کافی نبودند. انگела مرکل، صدر اعظم جرمنی گفت: رهبران کشورهای حوزه یورو مطابق مشترک کار کنند. با گفته وی برای حل بحران مالی در حوزه یورو به اتحادی سیاسی نیاز است. فرانس هولند رئیس جمهور فرانسه گفت: رهبران حوزه یورو موافقند که در بخش معاملات تجارتی به مالیات نیاز است. با اساس ها روز شنبه یک تن گوشته و 17 تن پسازان در غزه زخمی شدند که های اسرائیلی این منطقه را مورد حملات هوایی قرار دادند این گزارش‌ها می‌رسانند که تیارات اسرائیلی سه مرکز نیرهای امنیتی حماس را در شهر غزه هدف قرار دادند اسرائیل تا حال در این مورد چیزی نگفته است این حملات پس از آن اجرا که افراد مسلح در غزه برای اسرائیل راکت پرتاب کردند اما تلفات به‌دنبال نداشته است سرپرستی ولسوالی آلماری ولایت فاریاب میگوید که مجاهدین شب شنبه وارد یک قلعه در منطقه دنگله این ولسوالی شده 5 عضوی یک خانواده را به قتل رساندند نظر به گفته ها پسران این خانواده در صفوف مرتدین من حیث پلیس ایفای وظیفه میکردند اما در هنگام وقوع این حادثه در خانه نبوده اند در نتیجه سرازیر شدن سیلابها در چدنی ولسوالی ولیت بدخشان سیزده تن کشته و پنج تن دیگر زخمی شده و نیست حدود چل خانه ریهایشی تخریب شده است و در همین روز در نتیجه سرازیر شدن سیلابها در ولسوالی تولک، شهرک، چهارصده، تیوره، دولتیار و قسمت از شهرهای چغچرانی ولیت غور 24 نفر کشته و نو دیگر زخم برداشتند انفجاری یک بم در یک دوکان کسیت فروشی در شهر جرالاوات ولایت ننگرهار جان دو نفر را گرفته و دو نفر دیگر را مجروح نمود. خامید کرزهی رئیس جمهوری افغانستان گفته است که افغانستان در عرصای معارف از سوی کشورهای جهان چندها عقیم مانده است کرزهی گفت که در پهندتونها به جای فعالیت‌های سیاسی باید روی آموزش توجهی بهتر صورت گیرد گزارش ها می می‌رسانند تلاش برای نجات بازماندگان پناهجویانی که عازم استرالیا بودند تا شام شنبه ادامه داشت. کشتی عامل 200 پناهجو که 90 نفریان آن افغان بودند، روزی پنجشنبه در مسیر اندونزی و استرالیا دچار سانحه شد. یک مقام اداره مهاجرت به امور پناهندگان استرالیا گفت که تا کنون 4 نفر نجات یافته و 5 جسد نیز دریافت شده است. گزارش ها می رسانند که افراد مسلح سوار بر موتر سایکل هشت نفر را در شهر کویته پاکستان به حلاکت رساندند مقامه های پاکستان می گویند که در این رویداد یک تنی دیگر زخم برداشته است. روز یک شمبه چاری شعبان متابق 24 چاری جاپان 8 میلیون دلار آمریکایی را به هدف انکشاف از ظرفیت‌های منابعی بشری که میسیون مستقل انتخابات به این اداره کمک می‌کند، تفاهم نامه این کمک میان سفارت ژاپن و دفتر انکشافی سازمان ملل متحد روز یکشنبه در کابل به امضا رسید. در نتیجه تصادم یک واسطه نظامی آیساف با یک تانکر در مربوطاتی میدان هوایی قندهار چهارتن تن به شمول دو فرد ملکی جان باختند. جاوید فیصل سخنگوی این ولایت در یکی از رسانه‌های کفری گفته است که این حادثه روزی یکشنبه رخ داده است. وای همچنان ابزود که در این رویداد فرانندگی این تانکر همراه با یک شخص دیگر کشته شدند. در اعلامیه‌ای که از سوی عیساف نشر شده گفته شده است که دو سرباز آنها نیز در این حادثه هلع شدهاند. به شدنی در با اثر این سراز در شدنیسیل در یازده والسوالی ولایت تخریب سیتام کشته و چهار دتان دیگر زخم برداشت. و نیز دهها منزل مسکونی هم را با می‌نوازی زیرا و تعدادی از خیروان‌ها تخریب گردیدند. احمد رشید یکی از ولوسهلا در ولایت تخار با جانسی خبری رویترز گفت میلیون ها افغانی که شامل خیرمن های گندم بودن که حدود 100 خیرمن گندم را از بین برده و همین قسم بیش از هزار جریب زمینی مردم تخریب شده است همچنان مصطفی رسولی سخنگوی واری تخار با تماسی تلفنی در یکی از رسانه های کفری در مورد این ها گفت در 11 ولسوالی ولایت تخار از جمله ولوسوالی اشکمش بنگی چال نمکاپ فرخار ورسج کلفگان، رستاق، ینگ قلع، چااب، بارک، خوجغار، هزار سوموش و در چندی مناطق مرکز شهر طالقان رخ داده است. مجموعا در سیلابهای امسالی حدود 53 نفر کشته و 66 دنی دیگر جراحت برداشته اند. محمد مرسی از حزب اخوان المسلمین با آبد آوردن از آوردنی بیشتر از 13 میلیون رای بر رقیبش احمد شفیق که بیشتر از 12 میلیون رای گرفته بود برنده ریاست جمهوری مصر اعلان شد. توفان بحری دوایی چارمین توفان فصلی در سال 2012 که سواحیل خلیج مکسیکو در ایالات متحده را تحتیموش قرار داده است این توفان با باران‌های شدید در عدوبرخ همراه می باشد مرکز ملی توفانها در ایالات متحده روز یکشنبه گفت که شدت بادی توفان 85 کیلومتر در یک ساعت بوده و در چند روز دیگر به جانب شمال مکسیکو خواهد رسید گزارش‌ها می‌رسانند که شام روز یکشنبه ده‌ها افسر پلیس در ولایت هلمند مسموم شدند. فرید احمد فرهنگ سخنگوی فرماندهان امنیتی ولایت هلمند در یک از رسانه‌های گفت که شمار این افراد به 40 تن می‌رسند. اما دکتر نثار احمد با رگزئی معاون ریاست صحت عامه ولایت هلمند در رسانه گفته است که 76 مأمور پلیس به شفاخانه انتقال داده شدند. به گفته دکتر نثار این افراد به اثر خوردن غذا مسموم شدند. می می‌رسانند که شب دوشنبه ده‌ها تن از مجاهدین از مرز افغانستان عبور نموده در منطقه دیر بالا سه نظامی پاکستان را مورد حمله قرار دادند که در نتیجه 13 تن از مرتدین پاکستانی را به قتل اند. در ولایت بادغیز شخص به نام عبدالخالق که مأموریت سی پوسته پلیس ملی را به عهده داشت با چهارده عسکر مسلح با سلاح‌های خفیفه و 14 موتورسیکلت به مجاهدین پیوستند روز دوشنبه 5 شعبان مطابق 25 جون گزارش ها میرسانند که بیش از 100 شاگرد یکی از مکاتیب روز دوشنبه در ولایت سریبول مسموم شدند دکتران در شفاخانه ولایت سریپل و اساسانه های کفره گفتند که مدیر مکتب نیز در این رویداد مسموم شده است گزارش ها می رساند که بیش از سی عضوی اردوی سوریه به شمول شماری از افسران ارشد همراه با خانواده هایشان به ترکیه فرار کردن. خبرگزاری دولتی ترکیه گفته است که سی و سی سربازی سوریه شب دوشنبه واردی ترکیه شدن. گفته شده است که در مابین آنها حد اقل دو دگروال نیز شاملند. در مورد شامل بودن یک جنرال گزارش های ضد دینقیزه داده شده است. وزارت دفاع ایتالیا میگوید که اکثر سربازیان کشور روزی دوشنبه در اثر انفجار در یک مرکز آموزیشی کشته و دیگری دیگر یانان زخم برداشتن. به اساس گزارش های نشر شده از سوی ایشان انفجار در اثر اصابت راکت صورت گرفته است. یک طیاره بدون پیلوت آمریکایی نظر به عوارض تخنیکی در ولایت کنداز سقوط نموده است. در نتجه حمرات مجاهدین در ولایت وردک پانزده تن از نیروهای افغان کشته و چندین تن دیگر زخم برداشته ونید سیزده موتر رینجر به آتش کشانیده شده است روز سیشنبه شش شعبان مطابقی 26 شش جون مقامات میگویند در اثر انفجارها در دو شهر که از هم حدود 100 کیلومتر فاصله دارند بیشتر از یازده نفر کشته شدند. انفجار اولی در نزدیکی فروشگاه در شهر بعقوبه صورت گرفت چهار نفر را حلاق ساخته چندین تن دیگر را زخمی نمود حادثه دومی در شهر حیلا در جنوب بغداد حداقل شش کشته و سی زخمی بر جا گذاشت در اثر حمله افراد مسلح بر ساختمان یک تلویزیون خصوصی در کراچی تعدادی از کارمندان و محافظان این ساختمان زخمی شدند این حادثه روزی دوشنبه رخ داد که به گفته پلیس دو موتر سایکل سوار و چهار نفر دیگر بر ساختمان تلویزیونی حمله کردند و قبل از فرار برقی از موتورها را نیز تخریب کردند. گزارش ها می رساند که مقامات سوریا یک تیاره دیگر ترکیه را مورد حمله قرار دادن ترکیه می گوید این طیاره برای عملیات جستجو فرستاده شده بود که مورد حمله قرار گرفت مقامات وزارت خارجه ترکیه گفتن که بر این تیاره فیر شد اما طیاره سقوط نکرد و در بازگشت در قرارگاه خود نشست معاوین صدر اعظم ترکیه گفته است که این عمل سوریا به جواب گذاشته نخواهد شد مقامات امنیتی ولایت پروان از شهادت چهارتن تن از مجاهدین و زخمی شدن 2 تن دیگر در ولوسوالی درای غربند این ولایت خبر دادند زیار الرحمن سید خلی سرپرست قماندانی امنیه ولایت پروان در یک از های کفره گفت است که این مجاهدین در جریان عملیات نیروهای ار ملی به شهادت رسیدند زبیح الله مجاهد با تایید این خبر گفته است که در این عملیات 13 تن از ارده ملی نیز کشته شده‌اند در نتیجه انفجار مانئ برادرانی ما در ولسوالی قلع ایزالی ولایت کندوز دو ملشای محلی که به سوی جمع کردن عشو روان بودند کشته و یکی ایشان زخم برداشت پلیسی ولسوالیه تگاب ولایت کابیسا صبح روز شنبه جسد یک مرد را در این ولسوالیه دریافت کرده است عبدالحکم اخوندزاده ولسوالیه تکاب در رسانه های کفری گفته است که تا حال علت قتل این شخص معلوم نشده است و همچنان گفته شده است که تا حال هویت این شخص نیز شناسایی نشده است مقامات امنیتی پاکستان گفتند که طیاره بیپیلوت آمریکایی روز سی شنبه محوته را در شمال غرب پاکستان بمباران کرد که در نتیجه آن حد اقل چهار تن از مجاهدین به شهادت رسیدند و ای همچنان افزود که در این حمله دو تن از مجاهدین در منطقه شوال که واقع در وزیرستان جنوبی زخمی شدند. رئیس جمهور سوریا بشار الاسد میوید کشورش در حالت واقعی جنگ قرار دارد و حکومتی با افراتیت و اعتراضات مدنی دست به گریبان است او در این مورد در مجلس کابینای کشورش روز تشم به حاد داد بشارلست میگوید توری که من در سخندرانی خود در پارلمان گفتم ما از هر زاویه در یک حالت جنگ زندگی میکنیم و حالا که به چنین حالتی روبرو شده ایم که تمام سیاست های ما، تمام جناح ها و تمام سکتور های ما باید به هدف پیروزی در این جنگ سوق داده شود بشارلست بار دیگر تقاضاهای غرب را که او از قدرت بر کنار رد نمود. او مجلس کابینه خود گفت غرب همیشه از مردم میخواهد ولی خودش هیچ چیزی نمیدهد که این عمل خود را در مراحل مختلف ثابت کرده است روزی چهار شنبه هفته شعبان مطابقه 27 جون در یک گزارش تازه از سوی ملل متحد به رسیده آمده است که سالانه 200 هزارتن تن به دلیل استفاده از مواد مخدر در جهان حلاک می شوند اداره مبارزه علیه فساد اداری ولایت بلخ میگوید که یک سارنوال این ولایت به اتهام اخذ رشوه بازداشت شده است شمس‌اللاجاوید رئیس مبارزه با فساد اداری این ولایت در یکی از رسانه های کفره گفت که این سارنوال به اخذ 500 دلار آمریکایی از سوی مسئولین بازداشت گردیده است قایمانداری امنیتی ولایت هلمان میگوید در جریان عملیات پلیس در این ولایت چهار تن از مجاهدین بشرهداد رسیدهاند و همچنین افزود در این عملیات یک پلیس نیز کشته شده است. وزارت دفاع افغانستان های سیاسی مرتد آب در رشید دوستم را غیرقانونی می‌داند. مرتد زایر زمیس سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در کابل گفت که به بررسی نامه با مرتد دوستم مبارکه از نیات‌های مسئول گفتند که او حق اجرای سیاسی را ندارد. مرتض دوستم در این اواخر یک سلسله های سیاسی را آغاز کرده است گزارش ها می رسانند که حداقل 7 تن روز چهارشنبه در نتیجه انفجار دو مانی کنار در حومه بغداد در مرکز عراق کشته شدند پلیس گفته است یک بم اوایل صبح روز چهارشنبه در نزدیکی یک خانه واقع در جنوب شرق بغداد انفجار کرد گفته شده است که بم دومی نیز در همین محل جایی که مردم گرد هم آمده بودند انفجار کرد بر اساس ها در این حوادث 20 تن دیگر زخمی شدند. به اساس گزارش‌ها تحریک طالبان پاکستان تصاویر ویدیویی را به نشر که نشان دهنده ایجاد بدون سر 17 عسكري پاکستانی میباشد. گفته می باشد. گفتمه شود این سربازان قبلا توسط مجاهدین اسیر گرفته شده بودند. اردوی پاکستان قبلا گفته بود که 13 تن از آنان در جریان عملیات شب یک در منطقه دیره بالا کشته شده و طالبان 7 آنان را سر بریدن. همچنان گفته شده است که چندین تن از مجاهدین که چهره پوشانیده شده بود در اطراف سرهای بریده شده جمع شده و اسلحه خود را در دست گرفته بودند. مقامات استرالیایی می گویند اکثریت پناهجویان سوار برکشتی را که عظیم استرالیا شده روز چهارشنبه در آب‌های های بحریهن شده بود نجات دادند. مقامات گفتند یکصد و نفر نجات داده شدند. کشتی ان پناهجویان در 200 کیلومتری شمال جزیره کریسمس استرالیا واشگون شده بود مقامات میگویند جسد را به دست آورده و امکان دارد بیش از 20 تن دیگر لادارک باشند یک هفته قبل نیز یک کشتی دیگر که در آن بیش از 200 تن سوار بودند در عین منطقه واشگون شد که در آن رویداد 90 تن جان دادند شماری از پناهجویانی که به صورت غیر قانونی در تلاش ورود به استرالیا می‌گردند افغان گزارش داده می شوند روز 5 شنبه 8 مطابق 28 جون مقاماتی امنیتی ولایت لوگر میگویند کاروان نیروهای بین المللی در این ولیت هدف انفجار به هم قرار گرفت نظر به گزارشات این بم تلفات را در پی نداشته است. صادق عبد زئی آمیر امنیتی قمندانی امنیتی ولایت لوگر دیروز در یک از های کفری گفته است که این انفجار در منطقه صفیه سنگ ولوصوالی محمدآغای این ولایت رخ داد که در آن یک وسیله نظامی نیروهای بین‌الملل خسارمند شده است. زبیح الله مجاهد مسئولیت این رویداد را رو به عهده گرفته می‌گوید که در این رویداد 3 تن از نیروهای بین‌المللی کشته و وسیتن دیگر جراحت برداشته است. مقامات میگویند در نتیجه یک سلسله حملات در شمال بغداد پایتخت عراق حداقل 20 نفر کشته و بهش از 50 نفر دیگر مجروح شدند. مقامات گفتند که در اثر انفجار یک موتوربم در روز در یکی از بازارهای مشهوری بغداد 8 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. و همچنین دو موتوربم در شهر تاجی در 25 کیلومتری شمال بغداد منفجر شد که دو نفر را به قتل رسند و 50 نفر دیگر را مجروح ساخت. و بالا اخیرا تلویزیون دولتی ترکیه میگوید این کشور جا ساختن سلای دافیاوا در سرحدات ترکیه با سوریه را آغاز کرده است این خبر پس از آن منتشر می شود که قوا سوریه هفته گذشته یک تیوره جنگی ترکیه را سقوط داده بود پایان اخبار شنماندگان محترم، همین طور رسیدیم به پایانه برنامه امروزی، تا جمعه آینده همه شما را به خداوند زلجلال می سپاریم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هيا بنا كي نستعيد قدس جريحا قد سبي واغني بها مترنما الله اكبر مقصدي هيا بنا كي نستعيد قدس جريحا قد سبي اتكل يهود عرضا نادوا كرمه مسجدي وتعرضوا لنبينا جمع النصارى الحقدي <تصفيق> مع زياصر الشاش أبي زج وطلب مسمعي ززيونصر الشاش أبي زج وطلب مسمعي